فرزد دوباره سمت ذریحت کبوتری فرزد دوباره سمت ذریحت کبوتری اینجا قضاست روز روزه رضوان دیگری به نام خراسان به نام توس بی انتها وسی، فر از ماه و مشتری پیر و جوان و کودک گهواره مرد و زن بر شده است دور ذریحت تو محشری هرگز غریب با تو غریبی نمیکند اینجا تو با نگاه غریب آشناتری سرشار از سپیدهٔ توحید میشوم وقتی مرا به خانه خورشید میبریم آهو منم چگونه پناه آورم به تو لطف تو میزند به دلم باز خنجری نامت کلید دائم درهای بسته است نامت کلید دائم درهای بسته است بیهوده نیست در لب دلها شناوری ای آسمان سبز من آغوش باز کن میزند به یاد تو در دلم کبود السلام از یا علی ابن قبول باشه انشالله از هاتون، سودواری هاتون، راز نیاز ها و نیایش هاتون ما هم از فراموش نکنید مهمان عزیز و بسیار بزرگوار دوست داشتنی داریم که پنشنبه ها تشمیرن در برنامه ما زینت میبخشن قوام میدن به برنامه ما رونق میدن و اعتبار می بخشند به برنامه سید بزرگوار حکیم فرزانه استاد محترم جناب ها جاگاهی زیایی که از زرده بنده و همکارانم رو میپذیرن تسلیت از میکنم این ایام رو به پیشگاه حضرت و همه روحانیون محترم و علماء عزیزی خدمت شما و بینندگان عزیز سلام از میکنم از شهادت معصومین علیه ما و سلام را در این ایام ملت شریف ایران و همه شما بزرگوارا تسلیت از خیلی متشکرم. خب لحظه از ارادت به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام بود و من می که حضرت علی فرازی از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام رو زمزمه می کردید اگر اجازه می من خواهش کنم که فرمایش آقا رو بفرمایید تا بینندگان عزیز ما هم بهرمند بشن و انشاءالله پوستش های متعدد و بیشمار عزیزان بیننده رو مطرح بکنید بسم الله الرحمن الرحیم کتاب ارزشمندی هست چارده گوهر درخشون هم به زبان عربی هم فارسی هم انگلیسی نویسندش حسین خائری کرمانی چاپ بنیاد پجوش های آسان قسط هم هست کتاب قشنگی از خدا، از قرآن مجید از تک تک چاردام عصم روایات ارده از جمله امام رضا علیه سران است بحث هاجق پزشکیه یک دوره پزشکی یکیش حاشیه دارم یکی هم تو کتاب هم, هم. امام ابوزرعه علی السلام فرمودم لو ان الناس قصدوا في المطعم لاستقامت ابدانهم اگر مردم در خوراکی آشامیدنیشون آشامیدنشون میانه روی کنن هر اینه چهار بدنشون استوار و پابرجاست یعنی سلامت و آفیت فرد و اجتماع مستمره این که میان روی میگه دو معنا داره یکی این که پرخوری بدخوری اینها نباشه دوم این که سوی تغذیه نباشه پس تغذیه سالم از نظر روایات شیعه قضا یا ریزم قضی باشه سنشو شخص در نظر بگیره جنسیتشو در نظر بگیره مصرف صحیح باشه به مقدار نیاز بدن باشه بهداشتی باشه نفیف من سنن المرسلین التنظيف یعنی این قضا یا نوشده بهداشتی باشه نوشیدنی همچنین حلال باشه حرام نباشه شبهه نباشه همچنین طاهر باشه نجس یا متنجس نباشه همچنین طیب باشه ظاهر و باطنه. این خلاقی آشامیدنی پاکیزه باشه اینم مومن ترو و آیات شیعه حتی در آیات قرآن مجید در سجه آمده که مردم با هر دین و مذهبی که هستن و همچنین مؤمنین و مؤمنات همچنین انبیا و مرسلین همه طیب خور باشن طیب به منظره صده چون که صد آمد نود هم پیش ماست یعنی تمام مراتب قبلی که توضیح دادم باید رعایت بشه. هم در سوره بقره آمده آیه 168 یا آیه یوحناس کل و منطایی و اینجا هم در سوره بقره آیه 172 آمده یا آیه یوحناس دوین آمینه. خب اینجا خطاب به مردم دنیاست. این مردم دنیا با هر دین و مذهبی، با هر نجادی در هر جغرافیای طبیعی و سیاسی و با هر زبان و نجادی که هستید خدای رعوف به شما میگوید خور باشید تا توان تشخیص خطوط شیطانی از غیر او داشته باشید و تبعیت شیطان نکنید و لا تتبعو خطوات شیطان به خطاب عام پس نسبت به همه مردم دنیا به خطاب خاص یا ایهاللوین آمنو ای مؤمنین و مؤمنات طیب خور باشین و شکرو له تا توان شکر عملی نعمات موجود رو داشته باشید. تو بحث انبیا و مرسلین که 124 هزار نبی دارین از این تعداد 303 تا رسولم از این 303 تا رسول 5 تاش قلول عزم من الرسولم با سوره مؤمنون آیه 51 یا ایهاللوین کلون الطيبات معملوا صالحا اني بما تعملون عليم اي رسول الهی که منتخبان خدایید و بر شما واجب تبلیغ صحیح طيب خور باشید تا توان انجام اعمال صالح با نیت خالص داشته باشید حالا هست خطاب خدای متعال نسبت به همه مردم دنیا مؤمنین و مؤمنات انبیا و خب یکی از ملت های شریف دنیا که در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنه ملت شریف ایران همه با همه همه پشتیبان همه همه وحدت پیرامون ولایت حق دارن همه فرمایشات معصومین رو دوست دارن عمل کنن از جمله فرمایش امام یا رعوف میگه مردم اگر خودتون دوست دارید سلامت فرد اجتماع دوست دارید فرز دوست دارید زریب سلامت در کشورتون بالا بره میان روی در خوراکی آشان کنید، کنید پرخوری نکنید بدخوری نکنید سوء تغذیه نداشته باشین همون اصولی که دین فرموده در طبال معصومید رعایت کنید خیلی زود بر میگردیم و در محضر استاد خواهیم بود خیلی متشکرم انشالله حاجت روا باشید قبول باشه همه ازاداری ها و سودواری های شما در محضر استاد حکیم و فرزانه هستین جناب آقای زیاری عزیز که قبول زحمت میکنان ها تشریف میارند و در خصوص طب سنتی و طب اسلامی برای مراجعینندگانمون مستندات های بسیار ارزنده دارند پرسش های خیلی زیادی داریم از سنگ صفرا از میگرن از پروستات که برخی از آقایون مطلع هستند کیست تخمدان درمان عفونت کلیه طب مالت قند بالا گرفتگی اوره محسن اوره کیست تیروید و آیا اینکه حجامت تأثیری داره یا خیر با توجه به فراخور زمان مطرح میکنیم بلد. اگر صلاح می‌دیدید پیرامون سنگ صفرا صحبت بفرمایید چاست که چه گیاه برای درمانش بلد. مفید هست علل اصلی ایجاد سنگ صفرا در افراد یکی آب و آشامیدنی سالم کم می‌خورند حداقل تو 24 ساعت باید 4 لیوان بخورد. دوم اینکه آب جوشه بهلرم یا نمیخورند یا بسیار کم میخورند سوم اینکه عرق ریزششون زیاده چهارم اینکه چیزهایی که سبب ایجاد سنگ میشه مصرف میکنن. مخصوصا در خانوما که قرصای ضد حاملگی میخورند یه عوارضی داره یکیشان ایجاد سنگ صفراست پس این هایی که باعث میشه ترک کنند بعد درمانش آاصله یکی جوشانده هسته خورما به این هفته خوررم هاش با آب جوش با آبشون بعد از غذاشون حس جمع میکنن سه مترله در اینقرری کوچیک ها 20 الاصسی هسته میریزن به سه استکان آب میزن 20 دقه نیم ساعت بجوشه و یک استکان جوشده هسته خورما میخوان سنگ سفر کلیه کلی خورد میشه دوم این که تمرهندی بی نمک پنج اله هفت خوشه شد میذارن توی یک لیوان روش آب میریزن یک چند دقیقه صبر میکنن زود به لوم میشه جدا میکنن همین آب و با این لپای تمرهندی همشو با هم میکنن. این قوی ترین در وقیق کردن مایع صفراوی چون اول صفرا قلزت پیدا میکنه سپس مبتلا به لجن صفراوی میشن به اصطلاح تخصصی کبد بعد از اون مبتلا به سنگ صفرا میشن سنگای صفراان سه مدل اکثرشون کلسترولیه یعنی 80 درصدش کلسترولیه 15 درصدش پیگمانتئی قهوه‌ای 5 درصدش پیگمانته‌ای سیاه در پیگمانته‌ای قهوه‌ای اگر کافئین زیاد بخورن چه زن چه مرد چه دختر چه پسر چای پررنگ چای مونده چای با اوسانس چای عطری که فرمودی قهوه شکلات کاکائو نسکافه از اینا زیاد بخورن و همچنین قرصای ضد حاملگی در خانما هست این سبب میشه که شخص دچار سنگ‌های پیگمانته‌ای قهوه‌ای بشه تو کشورمون یه مقدار شایع شده. سنگ های ای سیاه اگر کسی افونت های ادراری یا دست به تناسلی داشته باشه و خودش رو درمان نکنه سنگ های ای سیاه در سفراش تولید میشه پس این هم داروش هم گفتین علت‌ها و افسانشام بیان کردید خیلی متشکرم سامانه پیامک تا 3625 در اختیار شما بینندگان عزیز است پرسش هاتون رو بفرمید بفرمایید تقاضا می‌کنم شما تلفن‌های سازمان رو اشغال نکنید 3626 فقط با ارسال پیامک 3625 عذرخواهی می‌کنم 3625 و برای درمانی میگرن که برخی ها مطلع هستن چه گیاه داروی؟ انواع سردرد ها تا کنون که در پزشکی شناسایی شده شست نوع. از این شست نوعه چارده نوعش میگرنیه بیشتر این سه اولش تو کشورمون شایه سردرده یک طرفی راست که درد تا پشت کره چشم. یا سردرد یک طرفه چپ که درد تا پشت کارای چشمی. دوم سردرد دو طرفه که درد تا پشت چشمی. سوم سردرد از پشت سر تا ملاج. بیشتر این ستا تو کشورمون شاید. چیزهای ترش، چیزهای تند و تیز، مصانسای شیمیائی. به خورات مسموم مثل استون آرسنیک، آمونیاک، تیزاب، آبژوال، وای تکس، مواد سفی کنند انواع اسپریه ها، پیف امشی، حالا از چی اسمش و همش... هم؟ و همشه، افرین احسن، افرین ات شیمیایی، اطرای شیمیایی، انواع دوده ها دود دوده گازوی، حالشونه بدتر میکن. حالا اینهایی که ضرر داره، ترک کنن، اجتناب کنن داروشم هم دو چیز، یکی گل راعی یکی هم گل ساعتی جمهوری اسلامی ایران مرکز تحقیقات داروگیه ایران تهران بلوار کشاوه است جنب بیمارستان ساسان اینو تولید کرد داروش تولید کرد یکی قطقه های پیران همین گل راعیه مشهدی ها میگن چای کوهی اطراف اسفراین سرولایت خدا رحمت کنه سادات شوشتریو علی الله نعمه اون منطقه میگن چای پشمکی استان همدان میگن چای کوفته خارجی ها میگن هو فاریقون از رسته داروهای دپرسان حالا این قطره های پیران رنج یا دانه مصرفش 25 قطره تا 35 قطره است از کم شروع کنه این یک لیوان آب 25 قطره های پیران میریزه یا یک قاشق چای خوری چای کوهی میریزه تو استکان روش آب جوش میریزه پنج دقیقه دقیقه سر میکنه همش میزنه میخوره پنج تا خاصیت در سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک در خانمه دوم سردردهای میگرنی این سنائی که گفتن در زنانیت پسر رو دفته زرف اصاب خفیف و متوسط درمان بیماری افسردگی عادی افسرده سه نوعه حالا افسردگی عادی یعنی سرمخوردگی روانی همچین درمان کلی که روده با کف کلی که روده این فرق میکنه با کلیت روده که التهاب روده است با کلیت زخمی یا سندروم روده تحریک پذیر با ایسته تا فرق پزشکی جدید در درمان کلیک روده که با کاف میگه که اسپاس معصبی روده دارو نداره تنقیه یا شیاف آغنی میده علاکی برای که مریض دلش خوش بشه مریض از سر دکتر و محترم با بشه اما درمانش چیه؟ همین چای کوهی یا قطره های پیرانو با یک لیوان آب بخوره اسپاس معصبی رودن هم خوب میشه داروی دومان ها گل ساعتیه در درمانی گل ساعتی من که یاد اون گل ساعتی هم جمهوری اسلامی ایران از این دوتا دارو زده یکی پاسیپی یکی والی پاسیپی هیدروالکلی گل ساعتی هم زده میگرنه هم خواباور طبیعیه بزا ما اون قطره های پیرانه میگیم صبح بخور قبل اینکه بری سرکار این قطره پاسیپی میگیم شب بخور قبل خواب چون خوابه بر طبیعیم هست علاوه بر خاصیت خاصیت‌های قبلی، اگر کسی هجوم زعف عصبش خیلی شدید بود یا میگرنش خیلی شدید بود، دارو رو یک کم تغییر میده. یعنی گل واقعی صد میزنی. اول مغرب گل بحر نارنج، گل بحر نارنج. اما شب قبل از خواب گل ساعتی میزنیم ولی اصاره گل ساعتی یعنی قرص گیاهی والی فلور به استداره آمیانه میگیم فیلم این ما که یه باش پوشت گوشت استخونی اص... به استداره مردم حاجبا قوی ترین دارو در درمان سردردهای میگرنی شدید انواع تشنجا حتی سرعی درمان کابوس شبانه و درمان بیماری هیستریا یعنی بیماری وحشت، گل بسیار نارنجی. من چند سال قبل خدمت ملت جهرومن هم بزرگواره که همسایه شیرازه، هم. اونجا گفتم درخت های نارنج دارن. یعنی خواستم بگم امروزم با اینا میتونیم درست کنید به نفع کشورتونم، صادر کنید کشور حاشیه دنیا. به جای والپروات سودیان و دی اسپان و از این دروه مختلف که میدن او سی بعدی تون بعدیتون چی بود هجا؟ اگر ازیزی میفرمایید یه بخش کوتاهی رو ببینیم مجدده خدمت شما هستیم سامانه پیام کتاه 3625 کمکان فعال هست آماده دریافت پرسش‌های شما بیرندگان عزیز و عجمند از مهمان گرامی استاد محترم جناب آجاهای زیری خیلی روزباشمار نسیم شرقی رو ملازمین فهمید در مزرعه استاد حکیم بزرگوار جن واجه‌های زیادی که در خصوص طب سنتی و طب اسلامی دستاوردهای ارزنده‌ای برای ما و بینندگان دارن از گل بهار نارنج صحبت فرمدید که برای درمان میگرن خیلی موثره بیشتر توضیح بفرمایید تا تفصیلو رو مطرح کنیم گل بهار نارنج جا در 24 ساعت یک قاشق چایخوری سنین بالای 25 سال سنین 15 سال تا 25 سال نصف قاشق چای خوری سنین زیر 15 سال و دوره ابتدایی یک ثوم قاشق چای خوری پودرش میتونن توی استکان بریزن روش آبجوش بریزن یک استکان آبجوش پینقه ده دقیقه صبر کنن هم بزنن بخورن چون یکم تلخ مزه است یکم اصل قطیش کنن بعد بخورن میتونن مرابای بحار نارنج از شمال بخونن یا از شیراز، یا از جهران، یا از سیرجان حوص هم داره بله، بله حتی ها مسقطی شیراز از شیره خورما و گل بحار نارنج خیلی خوشمزه است ما شالله اداره پستن است میتونم با پست فامیلاش و بفرستم. بفرستن مطلب دیگه ها جما ببخشین یک جمله تو پرانتز بگم آره اینه که دکترای محترم جدید همان گونه که داروهای شیمیایی تجویز میفرمایند طبق تشخیصشون و تخصصشون که بجاهم هست ما اگر گیاهی میگیم یا مسائل دیگه میگیم این تداخل در درمان نیست زیرا علل یک بیماری ممکنه متعدد باشه درمان ها هم متعدده یکی درمان شیمی درمانی میکنه یکی درمان گیاه درمانی میکنه، یکی درمان اکسیژن درمانی میکنه، یکی درمان به نوع طب سوزنی میکنه، یکی درمان به نوع انتقال خون یا فرابردائی خونی میکنه، دریافت یا پرداخت، و درمان های مختلف حتی بحث داروهای هومیوپاتی یا نوترکیبی که هفتاد از هشتاد درصدش، منشه گیاهی داره و بیس الاسی درصدش منشه املاح معدنی داره آنها تو اروفای غربی مرسوم شد و یا داروهای مولوکولی و هوشمند درکتیویلی ها تو بحث نانو تکنولوژی نداره مخواهیم بگیم فرمایشات معصومی با دستاوردهای و مختلف علمی هیچ تضادی نداره بلکه سنت رسول الله سنت حضرات امام علی علیه و السلام امیر المؤمنين. 11 هیازده معصوم دیگر اصلا سنت به اصطلاح شیعه که از ادله اربعه شیعه هست کتاب سنت عقل اجماع سنت به استله شیعه که از ادللی اربعه است یعنی یکانه الگوی واقعی که هرچه علم بشر پیشرفت کند به آن بیشتر پی می‌بره. ما اینه که در حداقل زمان با کمترین هزینه و کمترین استرس افراد نه مریض بشن یا اگر مریض هستن درمان بشن ما با هیچ دکتر محترمی تضاد نداریم همه شنم دوست داریم حیلی متحکرم خب اگر ممکنه خواهش کنم راجع به گیاهانی که برای رفع پروستات در به. آقایان مؤثر به. هست بفرمه به. علال ایجاد پروستات در پسران و مردان چون خانوما و دختران ها صالبه منتفی به انتفاق موضوع اصلاً قدر پروستات ندارن در مردان و پسران هست و 11 علت داره کلن پروستات سه بیماری عامده داره یکی التهاب پرستاد یکی تورم پرستاد یکی سرطان پرستاد تورم پرستاد یازده علت داره اگر اینا رو ترک کنن ها این بدی ها رو ترک کنن پنجاه درصد خوب شدن قند شکر شمینجات قنادی ها شوری زیاد مثل خیاشو که مشهدی هایی محترم مندازن نگهداری ادرار نگهداری منی تفدادنی صف کردنی بودادنی اضافه وزن کم تحرکی این یازده علت تورم ایجاد تورم پرستد بیست ده دا درمان داره از حیث خوراکی به نوع مغزهای مفید تخمه خام کدو اگر معدش قویه با پوستش میجوه معدش ضعیفه مغزش میخوره تو 2 ساعت یک قاشق پلوخوری خوری دوم کیوی رسیده لوپ سبزش کافی اگر یبوست هم داره پوست قویش هم میجوه میشه مسهل ولی یادشون باشه پرزای کیوی آس میاره تنگی نفس میاره زیرا آب پرزا با پشت چاقو بتراشه سوان زرش که خان تو بیس ساعت یه قاشق پلو خواهد شهاران شبها یه بشقاب سوپ رقیق بخوره. حتی بعضی چایه های باکتریایی هست مثل کامبوژا ما تجویز نمی کن. چون تهیه نگه داشتش و مصرفش باید کاملا بهداشتی باشه کوچکترین حالت باکتریایی عفونی چی پیش بیاد ایجاد لخته سراسری در خون میکنه پس ما میکنیم اما بعضی کتابا در داخل خواهد کشور این مطلب رو هم بیان کرد اگر قرص گیاهی بخوان ایرانی مثل قرص گیاهی پروستاتان اول مغرب یک اگر تورم پیشرفته باشه قرص گیاهی کانادایی اومنیک مر از این قویته اگر شخصی که پروستات داره فشار هم فرض داره حالا قرص شیمیایی ایرانی پراز زوسین شب قبل از خواب یک عدد زیرا آورن هست لوزی شکل کچیک شب قبل از خواب یک عدی اگر متخصص اورولوژی یا نفرولوژی یا متخصص دستگاه تناسلی در معاینه تشخیصی و بالینی احتمال داد که علاقه بر تورم پروستات، تومار خوشخیم هم دارد تومور خوشخیم هم در پایین تنه دارد اینجا قرص شیمیایی تره جنریک دارویی ایران فینا سیتراید. فینا سیتراید دو عدد یکی صبح یکی شب قبل اخو تمام اینه ای که تا اینجا توضیح دادم یک آرزه بد داره گرچه در این دروه شیمیایی و گیاهی یک آرزه بد داره بچیه گازشتران تورم و پروستات رو کاهش میده و کم کم خوب میکنه اما ایجاد خستگی جنسی میکنه در مرد و پسری که ازدواج قانونی یا شرعی کرد خب سبب مشکلات خانوادگی میشه جدیدترین قرص شیمیایی در این زمینه ژاپن زده به نام اومنیک امنیک, امنیک. کاهش تورم پرستاد میده اما خستگی جنسی نمی آورد خب هنوز فرصت داریم من پرسش دیگه ای رو مطرح بکنم بل یکی دیگر از موزلتی که بیشتر حالا مطرح شده این که حالا یه تعدادی از عزیزانمون بعد از حالا یا مصرف قضا یا در طول روز مدابرمند با ترشی معده مواجه هستند یا نارسایی هایی که در معده وجود داره اساساً چه مرهمی برای معده شما تجویز می فرمید؟ این بزرگواره ادواره باید چند نکته رو اول و کن اولا اگر دندوناشون مشکلی داره پیش متخصص دندان و یا جراح لثه دندوناشونو درست کن چون دایب به خاطر نارسایی در دندان و لثه شخص غذا رو نمیتونه خوب بجرد خود کم جویدن و قورت دادن بدون جویدن لازم خودش ایجاد سرسوزه معده، ریفلاکس و ایجاد یوبوست میکن پس دندوناشون لسهاشون و تعمیرات اساسی کن دوم برای غذا خوردنشون نیم ساعت وقت بگذرن تروایات شیئن میفهماید جو دل مذبه. به نیکی، به درستی غذا رو کاملا بجو چون بخشی از هضم غذا در دهانه بزرگ و انزیم دار خود مخلوط سوم اینکه بعد از غذا خوردن زود دراز نکشن لم ندن با قول مشدیا دخو نران کنار سفره بلکه بعد از غذا مستحب با آدم مختصری راه داره حد راه رفتن هفت قدم این دیگه حد اقل حالا اگر به مستحبات اسلامی عمل کن بعد از غذا راه برن به حاجی خانومشون کمک کنن تو جمع کردن سفره یعنی توفیق اجباریه که بار بره بعد قبل از خواب مستحب دستشی بره باز بعد دستشی مستحب به بگیره حالا بیاد به چقدر راه رفت تصالف فهم خب بعد از اینکه یه پنگ دقیقه ده دقیقه راه رفت یکی از داروهای ضد اسید معده که طبیعی هست سیب درختی رسیده شیرین سیب درختی رسیده شیرین از انواع سیبی که داریم مثلا هفتاد نوع بهترین هاش سیب قرمز معطر لبنانی سیب گلاب خراسان، سیب زرد سیب ترش نخورن عقیمی میاره مخصوصا هفته بعد از زفاف دوم سیب نارس نخورن یوبوست شدید و نفخ شکم رو بیشتر میکن. پس بعد از غذا اگر سیب درختی رسیده شیرین بود بعد از اینکه مختصر یه مختصری راه رفت پنید دقیقه ها ده دیره یک دونه سی به رسیده بخوره. بعد اقضا بلا فاصله میتونه بخوره و بعد را بره. مانه این کسانی که ریفلاکسشون شدید یا دائما سرسوزه معده دارن و ابتدای معدهشون میجوشه. ترشا همه پوده سرده و یا حضرت خانومی که ویار شدیده اینجا نه تنها آب سیب تازه مفیده بلکه یک عدد سیب زمینی آبپز متوسط این قلیائیش قوی تر از سیب درختیه اگر وقت نداره کارش داره دیر میشه سرویس دیر میشه زیبه آب میشوره سیب زمینی پوستش میکنه با قاشق پلو خوری بتواشه این پیاره سیبزمینی یه قاشق پلو خوری بخوره یکم برمزز تحمل کنه بلا فاصله اسید معده رو خانسان کن اگر این کسی سرسوزه معده داره و ترشا داره و ریفلاکسش زیاده چه حضرت خانومی باشه که ماه دوبام سبا محملگیه میتونه از چیزای طبیعی دیگه استفاده کنه بهترین داروی زد اسپاسمای شدید گوارشین سبزی سوسنبر کارخونه ایش دارو خانه ها دارن چای نعنا فلفلی کیسه هست مثل نپتون چای نعنا فلفلی نیست این طرفش شبیه نعنا سبز و برگش این طرفش یکم ای قرمز رنگه بهش میگن نعنا فلفلی همون سوسنبره حالا این استکان اگر پودرشی داره یا قاشق چایخوری پودر سوسن بر. اگر چایش خریده ازدار خونه یک دره میزه آبجوش میریزه 5 دق در دقیقه سر میکنه، هم می هم میزنه یا این نپتون رو فشار میده ما. این استکان رو قبل از غذا میخوره آب سو بر دن کرده سوسن رو و قبل غذا. بعد از غذا که یه مختصر رفت نصف استکان عرق نعنا. این هم قوی ترین دارو خیلی سپاسگزارم از تشه فرماییتون و بیان مطالب برمحتوی که قصار لطف فرموزید انشالله باست هم این قول میدیم از طرف مهمان عزیزمون جنواز آی زیایی که پنشنبای آینده هم در محظر با ورکتشون خواهیم بود با شما خدافزی میکنم شما رو به خدا میسپرم خواهش میکنم یه دعای مختصر بفرمید و انش اللهم صل علیه و ابیه و بعلیه و, بعلی و بنیه و سر عدد ما احاط به علمك خدایا تو میدانی که همه ما و ملت شریف ایران امام رزای رعوف را دوست میداریم خودت و معصومت بالاخص امام رعوف را از ما راضی و خوشنود بگردن الهی همیشه خدا و شادم و با ما با لطف و کرمش رفتار آر میکنه. ما میخواهیم تفضل خداوندی و تفضل امام رعوف هرچه بیشتر و گستردهتر این سایه رحمتشون بر سر همه ما مستدام باشه آمین یا رب بله. خیلی بله